فصل هشتم، تصمیم تسلط بر تعلل یا به عقب انداختن کارها گام هفتم، به سوی کسب سروت تحلیل دقیقی از بیست و هزار مرد و زنی که شکست را تجربه کرده بودند این واقعیت را نشان داد که تصمیم نگرفتن از اولین علل سیگانی شکست است این صرفاً بیان یک تئوری نیست بلکه یک واقعیت است تعلل که حالت عکس تصمیم است دشمن شایعی است که عملا هر فردی باید بر آن غلبه کند وقتی خواندن این کتاب را به پایان برسانید این فرصت را پیدا خواهید کرد که تواناییتان را در رسیدن به تصمیمات سریع و مشخص بیازمایید و آماده خواهید بود به اصولی که این کتاب توصیف می‌کند عمل کنید تحلیل چندصد نفر که ثروت هنگفتی اندوخته بودند این واقعیت را نشان داد که هر یک از آنها عادت داشتند به سرعت تصمیم بگیرند و اگر بخواهند این تصمیمات را تغییر دهند آنها را به آهستگی تغییر دهند. کسانی که از اندوختن ثروت باز می‌مانند، بدون استثنا عادت دارند خیلی آهسته تصمیم بگیرند اگر اصلا بتوانند تصمیم بگیرند و آن تصمیماتی را که می گیرند، به سرعت و غالبا تغییر می دهند. یکی از برجسته ترین خصوصیات هنری فورد این است که عادت دارد سریع و قطعی تصمیم بگیرد و آن را آهسته تغییر دهد این خصوصیت چنان در آقای فورد برجسته است که او را کل شق نامیدند این خصوصیت بود که آقای فورد را واداشت تولید مشهور تی خود یعنی زشترین مدل اتومبیل دنیا را ادامه دهد در حالی که همه مشاوران او و همه خریداران اتومبیل به او اصرار میکردند که تصمیمش را عوض کند شاید آقای فورد در ایجاد تغییر در تصمیمش خیلی زیاد تأخیر کرد ولی طرف دیگر داستان این است که قبل از اینکه تغییر مدل ضرورت پیدا کند قاطعیت تصمیم آقای فورد موجب ثروت فراوانی شد شکی نیست که عادت آقای فورد به داشتن تصمیمات قاطع در حد لجاجت و کل شقی بود برای این خصوصیت بر آهسته تصمیم گرفتن و آن را سریع تغییر دادن ارجحیت دارد چگونه تصمیم بگیریم اکثریت کسانی که از اندوختن پول کافی برای رفع نیازهایشان باز میمانند، عموماً به راحتی تحت تاثیر نظرات دیگران قرار میگیرند. آنها به روزنامه ها و همسایگان شایع ساز اجازه می دهند برایشان فکر کنند نظرات ارزانترین کالاهای روی زمین هستند هر کسی انبوهی از نظرات دارد که دوست دارد بر سر هر کسی که آن را میپذیرد بریزد اگر شما وقتی تصمیم می گیرید به راحتی تحت تأثیر نظرات قرار می گیرید، در هیچ کاری موفق نخواهید شد، مخصوصاً در تبدیل میل و خواسته های خودتان به ثروت. اگر شما تحت تأثیر نظرات دیگران قرار می گیرید، خواسته و میلی از خودتان نخواهید داشت. برای نظر خودتان، ارزش قائل شوید. وقتی تصمیم می گیرید، اصولی که در اینجا توصیف شده اند را به کار بگیرید و از آن پیروی کنید، نظرتان را پنهان نگه دارید. به هیچکس از به اعضای گروه مغز متفکرتان اعتماد نکنید و در انتخاب این گروه بسیار دقت کنید و فقط کسانی را انتخاب کنید که با هدفتان کاملا همدل و هماهنگ باشند. بستگان و دوستان نزدیک با اینکه قصد بدی ندارند ولی غالبا نظر میدهند یا گاهی تمسخر کنند. هرچند هدفشان شوخی است هزاران نفر مرد و زن عقده‌ی حقارت دارند چون یک آدم خوشنیت ولی نادان حرفی زده یا شوخی کرده که اعتماد به نفس آنها را نابود کرده است شما خودتان مغز و ذهن دارید از آنها استفاده کنید و تصمیم خودتان را خود بگیرید اگر آنطوری که در بسیاری از موارد احتمالا پیش میآید به کسب واقعیات یا اطلاعاتی از دیگران نیاز داشته باشید تا تصمیم بگیرید آنها را بدون حیاهو به آورید بدون اینکه هدفتان را فاش کنید. ویژگی کسانی که اندکی دانش یا آگاهی دارند این است که سعی می کنند اینطور وانمود کنند که دانش و آگاهی زیادی دارند. چنین افرادی معمولاً خیلی زیاد صحبت می کنند و خیلی کم گوش میدهند. اگر می عادت کنید سری تصمیم بگیرید، چشم ها و گوش هایتان را کاملا باز کنید و دهانتان را ببندید. کسانی که زیاد حرف میزنند کم عمل می کنند. اگر بیش از آنچه گوش می دهید صحبت می کنید، نه تنها خودتان بسیاری از پرست برای اندوختن دانش و آگاهی مفید را از دست می دهید بلکه برنامه ها و اهدافتان را نیز برای کسانی که از سر حسادت از شکست شما لذت میبرند، می کنید. همچنین به یاد داشته باشید هر وقت در حضور کسی که دانش و آگاهی فراوانی دارد لب به سخن بگوشایید زخیره دقیق دانش و آگاهی یا فقدان دانش و آگاهیتان را به او نشان می دهید عقل راستین معمولا از طریق توازو و سکوت قابل شناسایی است این واقعیت را به خاطر بسپارید که هر کسی که با او معاشرت می کنید مثل خودتان دنبال فرصتی برای انباشتن پول است اگر خیلی آزاد و بیقید در مورد برنامه صحبت کنید ممکن است از اینکه یک نفر دیگر به برنامههایی که شما نادانسته در مورد آنها صحبت کردید عمل کند و شما را غافلگیر سازد و شکست دهد. پس یکی از اولین تصمیمات شما این است که نسنجیده لب به سخن نگشایید و گوش و چشم را باز کنید. به خودتان یادآوری کنید که عبارت زیر را با حروف بزرگ در جایی که آن را هر روز میبینید بزنید. به دنیا بگو چه کار میخواهی بکنی ولی ابتدا آن را نشان بده این به معنای این ضرور المثل است که آنچه بیش از همه مهم است عمل است نه حرف آزادی یا مرگ به خاطر یک تصمیم ارزش تصمیم ها بستگی به شجاعتی دارد که برای عملی کردن آنها لازم است تصمیمات بزرگ که شالود ساز تمدن هستند با در نظر گرفتن ریسکای بزرگ ممکن شد. ریسکای بزرگی که یکی از آنها احتمال مرگ است. لینکولن صدور اعلامیه آزادی مشهورش که به رنگ این پوستان آمریکا آزادی میداد را با آگاهی کامل از اینکه این کار هزاران دوست و حامی سیاسی را با او مخالف خواهد کرد انجام داد. او این را نیز میدانست که عملی کردن ای اعلامیه یعنی مرگ هزاران نفر در میدان جنگ بالاخره به قیمت جان لینكلن هم تمام شد این تصمیم جرأت میخواست اینکه سغرات تصمیم گرفت جام زهر را بنوشد ولی از باور شخصیش عقب نکشد تصمیمی مبتنی بر جرأت بود این کار زمان را هزاران سال جلو برد و حق آزادی اندیشه و بیان را به کسانی که هنوز متولد نشده بودند داد. تصمیم ژنرال رابرت ایلی وقتی از ایالات شمال آمریکا جدا شد و به آرمان ایالات متلف جنوب آمریکا رویاورد تصمیمی جراتمنانه بود. چون خوب میدانست که این تصمیم ممکن است به قیمت جان خودش و دیگران تمام شود. اما بزرگترین تصمیمی که تعدادی از شهروندان آمریکایی گرفتند و در نوع خود بزرگترین تصمیم در طول تاریخ بود این بود که 56 نفر در تاریخ چهارم جولای سال 1776 در فیلادلفیا نام خود را پای سندی امضا کردند که خوب میدانستند یا برای همه آمریکایی‌ها آزادی بر میآورد آورد یا هر یک از این 56 نفر را بر سر چوبه‌ی دار خواهد برد این سند اعلامیه استقلال آمریکا است. این سند که توسط مردانی بدون پول، نیرو و سرباز امضا شد، توانست به استقلال آمریکا منتهی شود. توجه داشته باشید که قدرتی که به این کشور آزادی داد، همان قدرتی است که هر فردی که عزم خود را جذب کرده است، باید از آن استفاده کند. این قدرت از اصولی ساخته شده است که در این کتاب توصیف می‌شوند. لاقل شش مورد از این اصول را میتوان به راحتی در اعلامیه استقلال شناسایی کرد میل، تصمیم، ایمان، پشتکار، مغز متفکر و برنامه ریزی سازمان یافته در این فلسفه گفته میشود، اندیشه به پشتوانه میل مید قوی خودش را به معادل فیزیکیش تبدیل میکند. اگر شما دنبال راز این روش هستید، دنبال موجزه نگردید چون موجزهی پیدا نخواهید کرد. فقط قوانین دائمی طبیعت را پیدا خواهید کرد. این قوانین در دسترس هر کسی است که ایمان و جرأت دارد از آنها استفاده کند. ممکن است آنها برای یک کشور آزادی بیاورند یا برای ثروت اندوزی استفاده شوند. فقط کافی است وقت لازم را بگذارید تا آنها را درک کنید و به کار گیرید. کسانی که سری و قاطع تصمیم میگیرند، می‌دانند چه می‌خواهند و معمولاً آن را به دست می‌آورند. رهبران در هر عرصه از زندگی به سرعت و محکم تصمیم می‌گیرند. این علت اصلی آن است که آنها رهبر هستند. دنیا به کسانی که سخنان و اعمالشان نشان می‌دهد کجا دارند میروند روی خوش نشان می‌دهد. تردید و تصمیم نگرفتن عادتی است که معمولا در جوانی شروع می شود. وقتی جوان وارد مدرسه دبیرستان و حتی دانشگاه می شود، این عادت که همان نامشخص بودن هدف است دائمی می شود. نقط اصلی همه سیستم های آموزشی این است که عادت به تصمیم گیری قااطع را نه خوب آموزش میدهند و نه ترقیب کنند. چه خوب است اگر دانشگاه ها تا زمانی که دانشجو هدف اصلیش از تحصیل را اعلام نکرده باشد، به او اجازه ثبت نام ندهند چه بجاست که هر دانش آموزی قبل از اینکه اجازه یابد تا به کلاس های بالاتر برود از این درس نمره رضایت بخشی بگیرد. عادت تردید که به وسیله نواقص سیستم های آموزشی من حاصل شده است حتی در انتخاب شغل دست از سر دانشجو یا دانش آموز بر نمیدارد. عموماً جوانانی که از مدرسه یا دانشگاه خارج می شوند دنبال هر شغلی که پیدا بشود هستند. اولین جایی را که پیدا بشود انتخاب می کنند چون عادت کردند تصمیم نگیرند. امروزه 98 نفر از هر صد نفر دست بگیر که در یک حرفه خاص هستند فاقد تصمیم قاطع برای برنامه ریزی در یک شغل مشخص و فاقد شناخت و آگاهی برای انتخاب کارفرما می باشند. تصمیم گیری قاطع همیشه مستلزم جرأت و گاهی جرعت فراوان است. پنجاه و نفری که اعلامیه استقلال را امضا کردند، جانشان را به خاطر تصمیمی که گرفتند به خطر انداختند. کسی که تصمیم قاطعی می گیرد تا شغل خاصی را به دست آورد، جان خود را با آن تصمیم به خطر نمی اندازد، بلکه آزادی اقتصادیش را به خطر می کسانی که به دنبال استقلال مالی، ثروت و کسب و کار مطلوب و موقعیت شغلی مناسب هستند، بدون انتظار کشیدن برنامهریزی دقیق و خواست واقعی به این چیزها نخواهند رسید. در فصل مربوط به برنامهریزی سازمانیافته، درصورت های کاملی را برای بازاریابی برای هر نوع خدمات شخصی خواهید یافت. همچنین اطلاعات مفصلی در مورد نحوه انتخاب کارفرمایی که ترجیح می دهید و شغل خاصی که می خواهید ارائه خواهد شد. این ها ارزشی برای شما نخواهند داشت مگر اینکه قطعا تصمیم بگیرید که آنها را به طور سازمان یافته وارد برنامه عملیتان خود کنید.